<تصفيق> بله همکنون در خدمت کاشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ استیم تا ما رو در جرگام نیم آخرین اخبار انتظامی قرار بله. سنگ جون ما به گوشیم دید. بله بندهم سلام بله. عرض می‌کنم ما در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. ای سر اخیراً نیروی انتظامی اطلاعیه داده ظاهری از عراق برمیگردن بند. اسباب بازی رو که اونجا خریدن برن به پلیس تحویل بدن. چرا چی شده با اسباب بازی بچه مردم چیکار داری شما؟ بله با عرض کنم م. که گزارش رسیده است که تو این اسباب بازی‌ها مواد خطرناک جاسازی شده سا. اه. این همین دلیل خویی هست با بازیام خطرناک هستن این موادی خطرناک چی هستن سرنگ دیگه ببینید بی من خیلی واردی جزئیات نمیشم و در هر صورت این مواد میتوند مشکل زا شد برای مردمی عزیزمون پاولوی دیگه این با مواد منفجره بوده سرهنگ دیگه عرض کردن بنده واردی جزئیات نمیشم حالا هی شما بپرت ای بابا حساب نداری سرنگا نه اخر شما یاد... حالا ولی شایمندگام نازنین بفرمایید که بله. چطور ماموران شما از با بازی خطرناک رو از با بازی غیر خطرناک تشخیص میدن و ببین اینا ام. دیگه مهارت های تخصصی است که بالاخره در معمورینی پلیس وجود دارد برای آه. حفاظت از مردمی عزیزمون یعنی الان شما خودت ب... هم تخصص داری دیگه ب... تو این زمینه دیگه بالا ب... بله دیگه ما هم برای نال شدن به درجه سرهنگی یه سری داره هارو در این زمینه گذرونیم ما خب به پس حالا ما... با اجازه شنوونگان عزیج میخوایم یک آزمایش بله. در این بخش از برنامه بیریکوسی یک آزمایش انجام بدیم چه آزمایشی و... آقا جا آزمایشی نداریم ما اینجا که کی... نه ببینسن هایی الان من چهار تا اسباب بازی چه... رو آقای... اسباب لخزه... بازی چه, چه... آه... اه... چه... چه کار میکنی اسباب بازی برای چی چه کار آیی میکنی شما آقا این عروسک باروی دخترمه این چه چی ای... عزیزی این چه... من اینجا ماشین کلکلولی خودم اینم موازی باش برای سرش ندید آقای عزیز این حضوری مهد... که فقط عروسک این جز ای ای زر... گفتم این بزرگی اینم این جاسازی این جلسه جلسه عقیل زادیه من نمیفهمم شما خانوادگی همه اسباب دارین تو این سن و سا؟ علی دیگه ما خانوادگی سن درونمون خیلی فعالیتش زیاده. بله؟ اما مسئله اصلی اینه این این که الان تو دو, دو تا از اینا من مواد خطرناک جاسازی کردم سرحنگ شما برای ما پیداش. مواد خطرناک چی چی دیگه عجب کارایی میکنی شما چه مواد خطرناکی آقا جو؟ عشق کنم سرنگ جان خدمتت توی ایک از اینا نیترات آمونیوم هست که میتونه با یک اشاره بله کل ساختمون رو بیاره پایین توی یکی دیگه هم از آ... چیز کردی آقای... تی این تیه فعلیه جا جاساس کردم که قابلیت ای... انفجاری شما... خیلی بالا داره دیگه میدینی دیگه تی این آقای میکروفونی واقعا شما داری واقعی میگی یا شوخی از ما داریم اینجا این... آزمایش می کنیمیم کار علمی انجام میدیم برای مردم شوخی چ چ شو... بسم الله ببینم چه می کنی دیگه سر آقای باید. از شما دیوانه ای اغلت شده نشده هستیم و خطر ناچپ به اعضا من بیسین بزنم الان ما سرحن... فگر میشد اینجا تازیاد هم جرم... رفت سرنگ بگم آز سرحن. از سرحن. یه بوم به ساعتی هم دادم بچه درست کردن بله آقا نش همین این دورهبر یه جایی اجساس جا کردم این شما خونساش کن اول باید پیداش کنیم بعد خونساش کنید تا دیگه مردم در جریان مهارتهایی شما قرار بگیرد شما صدای چمدانی باشه اینجوری مرکز مرکز سرای مرکز سرای باعث تروریسم خون ساساری باب افرید بیاد ما اولویت منه واظع خطر چرا شلوغش میکنی چی آقای عزیز این زنگ خطر اینجا کجا ساخته ساختم تخلیه به چ... زنگ خطر وای کجا زنگ خطر با داد باجای جنگ این... کلی بازی در میاری تو ایش. چیزی نیست یه سری مواد منفجری ساده است ولی بمب ساعتیه خیلی وقت نداره بجنگ نه البته پیداش شدی شما ببینوال شو دیگه با رونالدیو نه خونه با زنجیره ببندنت زنگ این باجاست ما کنی بجنگ ببین سازی اینجا میره رو هوا در این یا دیدی شان چشمم افتاد یا ابروی هر چی محمود بودی آقا جون نشستی چرا پاشا میبینی جف گرفتتی 4 تا جونی بم دیدی ببین چی باش باش داشت میکونم باش باش وا وا میتری جا سن ساعت آقا جون رو میبینه بم با کون داره